گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دیگر آنجا که روم آقل و فرزان روم زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم نظر کردم که هم از راه به میخانه روم تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در سومه با بربت و پیما نربم آشنایان ره عشق گرم خون بخورند ناکسم گر به شکایت سویبیگا نربم بعد از این دست من و زلفش و زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوان نربم گر ببینم خم عبروی چون مهرابش باز سجده شکر کنم و از پی شکرا نربم خرماندم که چو حافظ به تولای وزیر سرخوش از میکده با دوست به کاشا نربم